بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله عن رسولیتنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و دعوت دائمت و علا عداب و اللهم افعل و جميع المشهرین و رحمنا برحمتك و رحمتك یه جمعبیه کلی داشته به این بحث احتیاط از رو کنیم از, از کن دسته هم استاد آخر بحث دارم که متعرضش نشدیم چون خیلی ترتیب و اثر و ای نداره یکی شاید به است که شاید انساری اعتراض ماهی میتونه برای مثل محق محقق قومی و از کردن کلمان محقق نایمی توجیف بکنم محقق تاستاد به چون در این کلمات خیلی وقت رو اونم ا چون مبنیست بر بحث انصداد و دلیل انصداد و نتیجه انصداد های حکومت هست یا به اصطلاح طبیز احتیاط هست و از این صحبت که بحث ها خیلی پرگیه و به ذهن من خیلی آثاری برش مترتبه میشه ما غالبا اون بحث رو متعرض میشه یه خدا هم خواستا مبارده اما راجب کلی بحث راجب کلی بحثه اولا این امتصال اجمالی در موارد سبوت تکریف عرض شده این که تقسیم بندی که شد حالا با صورت عدم تمکن از امتصال تفسیری که خودش اما در صورت تمکن، صحبت شدیه موارد اموری هستن که شبه واقعی هستن مثل تهارت و نجاست اینها و او حکومه هیچ اونا تا به اصطلاح من نکته مسئله نه انتسابی ما که نقصی مطرحه مثلا یک آب گلاب و یک آب آب دو سمایی هستن تشخیصاً نمی‌مونه دست با هر دو میشوره اشکال نداره خاک میشه, میشه. دست هر با, با. با گلاب خسته باشه بعد با آب پاک میشه با آب آب پاک کرده. با گلابی دیرنج میشه میشوره دیگه این اسمش جای بحث نیست در نکته خاصی هم نداره اسم دوم در بحث عقود بود و با آب و ارز شد که مردم شیخ اشکال جزم در نیت داره و مرگوم استاد هم که جواب بدن که یه توضیحات ارز کرده این استاد فهمنه که جزم در نیت به این معنا در معاملات معتبر نیست حتی اگر بدانه این معامله رو شارعه امزا نکرده و بعد انجامش بده ایغایش رو کنه بعد معلوم بشه که درسته باز همون معامله درست خب یه مقدار ما توضیح بدهیم که سرحت معامله این فرض استاد روشن نیست. محتلی که ایشون فردن خیلی روشن نیست و این توضیحات که وقتی معامله داده شده ایش مارن اینشان تفسیرش تو بحث معامله ظاهرم مراد مرموم شیخ از جزم درمیت است نه اینکه مثلا تحلیقی در اینجا آمده چون بحث اینکه اینجا نیست بحث تحلیق نیست مراد مرموم شیخ از است که شما در اجرای این سیغه نمیتونیم اینچاق بکنیم ایغاق بکنید. شاید هم اختلاف در این جهت مبنی باشه که میگم شاید چون مبناییه من روی مبانی دیگران رو خیلی بحث نمیکنم مثلا اون مبنی استاد را لازمه شما خودشون با توضیح کنم اون مبنی و مثلا بگیم اکیسی قائل باشه که انشاء شاید ابراز اعتبار نفسانی است حده شده ابرازه خب چه مشکل داره من اعتبار نفسانی با دو نفس مشکل کنم تولید راحت اما اینکه ممکن این شو یقا اون با همون داره یقا میکنه اینجا مشکل جذب در میاد یعنی که مرغونشه روشن شو مرغونشه میگه جذب در نمیاد میشه یقار تنها باشه میکنه چون میدونه این لحظه سبب حجر است مرغونش احتمال داره میگن من خیلی احساس متخاصی احتیاج میکنه میگم میکن روی معنای ایشون لازمیه که خودش واسه خودش بدن ما این بحث از زمان رو خیلی پیگیری نمیدونیم فکر بکنم شاید نکته اساسی این باشی در ذهنیت مرموم شیخ این بوده که انشاء ها اون در ذهنیت مرموم استاد ابراز اعتبار نفسانی است ممکن است که در ابراز بگه انسان دو تا لفظ میاده رفت ابراز بسنه. اعتبار نفسانی که هست اعتبار نفسانی که ابراز میکنه با دو تسیقه ابراز <تصفح> مشکل دره توضیح نه خودشون در اینجا من فکر میکنم این مسئله مردنایی باشه اما شیط یه ایقاهه چون ایقاهه من وقتی گفتم زدوشتو نمیدونم ایقاه کردن نکار بیانم ان که هم که گفتم نمیدونم اشکال اینه که منهیت المجموع درسته من اون لبز بایی رو مودن. اما در این انشا و در این ایقا من نمی‌دونستم که در انتقاب زوجیت و ایجاد و ایجاد الجایزوجیت، ایجاد مکیت، نقل مخلص هر کدوم معناش بوده. نقل این، نقل منافع، نقل انتقا هر جایی که در هر موردی از موارد معامله تصور میشه پس اونم این فکر میکنم اشکال مقدارش مربوط بشه به مسئله یه تفسیر طرف از مسئله امشه این یک اعتراض دست نخاصی رو در که شده که این زوجه باشه از بر ایراد رو پیدا کرده شده اصلا دست من فکر میکنم درکی که ایشون فکر میکنم میشون روی مدنی خودشون این مطلب رو فرمودن و شیخ هم روی مدنی خودش و من فکر میکنم شاید در ذهن و بارد شیخ آزا تقریب رو من عرض میکنم به شیخ هم نسبت نمیدن چون فرس که این برمان تقریب کلام شیخ و کلام شیخ یا تقریب ما یه مشکل اساسی اقلا غیر از این که در بابه این شاه یا فقط مجرد ابرازه از پندر تفسیر قدما که همون امسایی لحظ اساسه اساس لحظه نه اینکه که فقط مجردی امراضه اصولاً با لحظ به همون مقداری که لحظ میشه این شامش مشکلی که من سابقاً که دارم. ما در این لغاتی که داریم لغاتی که الان در من یه لغت جایی در از استرانتونی را توی لغت استرانتونی را توی این لغاتی که داریم الفاظی رو که برای این داریم همون الفاظ ا این نقطه ای که بود رویست مثلا به ذروشت و جنمسی ممکنه اخبار باشه که دیشنم هم تضییم شدن این لحظه ذروشت و مثل اقلم افقا کملا هم لحظه انشاره هم لحظه اخبار. به قطعه هر دو صراحیت داره داده هم اخبار هم انشاره اگر واقعا با این لحظ آقای زوجیت ایجاد بشه پس اون گفتن زبوشت رو باشید زوجیت ایجاد بشه. اون دوم میتوی بگم دیگه آج اخوار بشه خب ایجاد شد آقای زوجیت به قضی به من اگر با لحظ زبوشت رو گفتم و آقای زوجیت پیدا شد اگر بعد گفتم انکهتا این یه خانه آقای چی میشه اخوار بشه میشه چون با همون اولی شد. مشکلش هم اینه که لفظ برای هر دو صلاحیت داره اگر بخوام بگم, بگم که من احتمال میدم مرادشه این احساس رو کرده بوده اگر بگم من ایقا کردم دو مرتبه مرده ایقا بکنم. بکنم؟, بکنم چون دو مرده ایقا بکنم؟ ایقا که میتونم تا چون این نهوه ایقاها از قبیل صرف الوجود هم. وجود ساری نیست هم دوم سوم نداره صرف الوجود هم. تا گفت در که نفسی ایقا ارقه زوجیت شد ارقه زوجیت ایجاد شد دیگه, دا دا دا دیگه امکان من دومشتر ایجاد بشه نداره ندار در ایجاد لذا خواهی نخواهی ما شبیه اخباره یعنی کلامی که هست اگر گفت در بشتو خبر میده که من بالا لبزر بر ایقاق نکاح کرد بلو بالا اون اشکال که اخبار در اینجا قصد نشده اینش اون قصر شده ما مصداقاً هر موقع خودش اشکار اصلا تصویر این مطلب مشکل داره یعنی چون به هر حال که میشه چند تا لفظ میاره میدانه با یکیش ایقاع واگیره اینو میدونه تشخیص نمیتونه بده مراجعی هم داره راه هم داره مخصوصا کلام گیره تمکن هم داره که به رساله مراجعه کنه و استدلال بکنه که ایقاع واجبه خب این سوال هست با یکیش که ایقا واقع میشه با بقیه فکس ایقا چه فایده ای داره وقتی ایقا واقع نمیشه چه نفعی داره چه اثری داره با اون بعدیه که انجام بده ما سر درش بشیم لازمه اختیار چه دیه دیه لازم آورد اصلا اثر نداره چه دیه خلاصه رو می‌بینی اولا اختیار شما خودش یک هستیه مثلا این اختیاری که از مفاهیم عذر احتیاط در اینجا بین است که به رساله نگاه کنه همونه که لفظه یه انجام احجام برید این چه برس میداره که سر در لفظیار شار در لفظیار ما عرض کردیم اسمی رو احتیاط نبید اسمی رو احتیاط محتمل این در رساله ها نوشتن یا مخلط است یا مشهد یا محتاط نه محتاط نه یا اشتاد یا تحرید یا احتیاط مثل یا اشتاد یا تحرید یا احتیاط محت <تصفيق> دردت دردت آه. این احتیاط در جایی که تمکن نداره میان احتیاط اما تمکن داشته باشه احتیاط محتملات این اگر به جایتون همین اول دو ها به جای کلمه احتیاط احتیاط محتملات می میشه این حل میشه ببینید اگر بالا لفظه اول تو بکنید ایغا واقع نشد این نه اینشار ای چون سلاحیت نداره نه نه اخبارتون واقع نشه. لحب، لحب میشه نست لحبه من اولیش این سال من با دومی که واقع میشه ایقاهه با بعدیا ها که بیاد اخباره و این اخبار هست واقعش اخباره اما این های قصه ایقاه میکنه بخش بخش من احتمال میدم چون خود من سابقا همیش شبه تو هم بود تا دوگی چند ساله احتمال میزن که شاید نظرم که شیخ این باشه من احتمال میگه این یعنی چون این قسلتی سیلم لفظ هست نمیتونه بگه انکهت و من ایقاه نیش آمیدونم اولی شد تو دارو فقط یکی شد بعدی شدیه که باز بگه ایوار چی باید ایوار احتیاط در این اسمش نیست اگه کلمه احتیاطی برده بیشه احتیاط محترات مشکل ما با آقایش هم میشه این محتملاته خود احتیاط محتملاته نه احتیاط اگر رسال رو باز کنیم تو لبیره انجامی نه مثلا ها یه مرژه یه نظره اینکه مرژه نه ببیره یه مرژه یعنی یه میگه که این آقا تغییره سریعه یا نه اون بخی دیگه اگر شکی که در اجازه تقریبه دو نفر اونی کنو تمکن نداره کنو بسته تمکن نبوزن میشه دمتار... اون احتیاطه دو نفر هستن میدونه یکی شقیه جامعه شرایط یکیش این تشکیز نمیگه از هر دو تقریب میکنه کنگه این لحظه رو زدوشه کنگه انتره این احتیاط شاید هستن رایی نداره برسن این احتیاطه میه چرا تو کمی دیدن ما که نه، با تمرکن از تو یه بنده گفته با انکرته رو اجرا کنه یکی بازار ولی میذنه یه چیزی ایشون هر دفعه میگه یه اما اگه حجته اینجا احتیاج همین هر یه نمیدونه که این حجت قولش یا اون یکی بینی این دو جمع میکنه راسته این خوب. سوش احتیاط هم. مثلا کسانی که تمیز اعلم لازم به دو نفر شد یا به این روزا میکنه این هم محتاج و نه این نیز مرادشون یا, یا مغلد یا محتاج این با که تمکنه از نشاه داره احتیاط باید که تمکنه از تقلیل سریع هم داره بازم اکیان محتملات میکنه این محل کلام محلات تغییری معنیل یا خودش فقیح هستن مراجعه برده نکنه در میگه به یا فقیحی که ازش تغییر می‌کنه معنیل رساله‌ش باز میکنه چون چونه بشه که ضربت که آتا میگه من نگاه نمی‌کنم کنم هرزارم میکنم این مشکل اینه یا نگاه هم میکنه بازم هرزارم میکنه این چه اولیه اگه فرض کنیم بردارش تمدیدش انجام داد این حجت ایقا هم با اون واقع میشه درستن هست اساس خب دوم میشه اخوا اولی اگه اینو ایقا دوم میشه اخوا یعنی ننون میتونه محمدم در صد تو اون چیزا اولی اگه منشات خوجا بزن یعنی با... به تلاشش با یقین نداری حس بدی که داره بعد سره حجته حجت داره یا نداری سوال یه درست میگی تمکن نداره قبول کردیم اونجا اگه تمکن نباشه که احتیاطی که شرط در بحث در کجا تمکن داره شرط مثلا قیل نما پیش شرک میتونه بگذاره قبله تشکیش داده یا برویم مکسی که پرسان قبله تشکیش میگه در چار جرد در اینه این اسمش احتیاطه تصویمی این محصف تنویش بیرون محصف به چار در نماس میکنیم. ما در ذهب شروعیم این احتیاط نگیم. این احتیاط محتوط هاست. این آهد شروعیم احتیاط. اشکال مباعر اینجای. که یا مشهد است یا مخلط یا مختار این یا که عمردن یعنی انسان تخییر داره. میتونه تغییر بکنه میتونه احتیاط بکنه. خب بحث که اگر تردیل صحیح موجود بود نوبت به احتیاط نمیرده اگر انتصال تفصیلی بود نوبت به انتصال اجمالی نمیرده به عبارت مخراج اگر حجت بود اتیان محتملات نقطه نداره خیلی مختصر و مفیق اتیان محتملات نه مصداق حسن احتیاط عقلی ایت اقل عملی نه مصداق اصل عملی نفس ابراز نمی کنه اعتبار نمی کنه چیزی کنه اشکان محتمل نیست چی نیست اشکان محتمل نداره ما راجوت بیکار این محتمل در اینتام این اشکان محتمل احتیاط نیست اصلا احتیاطی نیست اصلا معقول نیست رو دیگه طب من همی ندارم یعنی خلاص تخیانه از امکان با امکان و حجت باز بره دوباره تکرار بکنه در شواهد موضوعی تر شواهد حکمیه این این که در رساله شواهد حکمیه البته علت متجانسات ممکن ممکن است گفت اون این ihtiyaz محتمل چیز دیگه‌ایه از از ده. ده. اجازه بدیم اولا اولا ما همیشه ارز کردیم این حکم واقعی که الان گفتیم چه بعضی واقعیتش اینجوری دارمدار و حجت مثل سنت غیر از فرائض اینا دارمدار و حجت هم. اصولا ما در اعتبارات قانونی همیشه دارمدار و حجته. واقع نگاه نمیکنیم. واقعی هست. واقع هست اجازه بدیم اما نفرد واقع هست اما اون واقع خود واقع هست این... اون واقع هست لیکن واقع, واقع این یعنی خود و وا... نظام اگر نماز, نماز نمیدونست مثلا هم دو قلوباله ها رو نخوند بنابرای در جل یا فراموش کرد بعدم فهمی که نخونده فراموش کرده یا نماز درست شون واقع که هست که سوره جز نمازه فاطرس کتاب جز نمازه لیکن نحوه جه دارمدار رو شما در باب اعتبارات قانونی صحبت واقع نکنید ما در باب اعتبارات قانونی دارمدار رو حجت دیم ممتنم. اونی که منجعل شده، اونی که به بمقدار حجته، اونی که به بمقدار حجت. اما این که حالا واقع در اون رساله مکر مرویزه قم میاد همین اشکال به آقا مولایی نوری میکنه. میگه ما هیچ چیزی نداریم که رسالم بشیم چون ما مولایی میگه عواقب عمرش 100 سال عمرش بود. عواقب نمازهای جوانیش رو اعاده بکنه. حالا خیلی چند دفعه کردم. ما رو ماج آقا مولایی میگه رسالت فیثو بود. ماذ احضار میکنه. ما هموزه قومی که فرقی بود با احتیاج داشت. بود. بود. ولی چیزی که ما ما حد حسین نداریم. شما بیان من نماز دیگه در خودم فلان جاش گیر این هم حسین نداریم ما هم چیزی صاحب هستیم. خوشجویی اینه که با تمکنه از امتصال تفصیلی اشتهادن او موقر میده. پس فرما بر این به نظر ما در اقود اشکال جرد امریت که مربوم شیخ فرمیدن این اشکال وارده و به نظر ما تقریب بهترش اینه این شاید نظر شیخ هم همین بوده اصولا با اون اونسیت احراز نبکنه ایغارو نه خب داریم بحث جمع میکنم چون کلام شیخ خواستم توضیحی داده به شدتو این راجب به عبادات عرض کردن چند تا اشکال بودی که قدس و بوده که قدس تمیز بوده که جای اشکال اشغالی گفتیم دیگه یکی مسئله انباس بود یعنی معتبر در عبادات بود انبواس از امر مولا باشه این هم هم این این که آل خویی اینا جواب داد که ممنونایی نمیشه داره یکی اینکه تکرار مستزم مثلا لعب ب... به امر مولا سو الی اخری اصل انصاف قدری تو این اشکالات اون انبواس خبیه تو مویه چرا عرض کنیم قوام امر، قوام عبادات به قصد امره. نمیشه بدون قصد امر. قوام عبادته. نه، اومدن امر. از برد ان امرش قصد امر. بله. اون اثبات امر لازم نیست انفعالی باشه. اثبات امر اگر ابتدایی هم شد کافیه. یعنی چی؟ یعنی من میگم یا امر هست به صدقه یا به صلاح این مقدار کافیه که چون من علم اجمالی دادن به اهدهم ما پس هر دو انجام بده. این جا خیلی خوبه. این جور جا یعنی جاهایی که احتمال مایه داره، احتمال بستر، احتمال گذاره میتونه ابداع نسبوبه. اما مجرد احتمالات بعیده که هیچ نوع تأثیری در نمیگذاره، این معنی نیست و داشته باشه. اصل این معنی نیست انباء رسوله، بخت امر رسوله. به شکل ما در اشکال آن قصد بشته تحقیل قصد امر با نبودن امر نه به نه احراز و نه به احقاق نفس بسیار بسیار مشکل و ادعایی این که این عبادته و این احتیاطه و این قصد غربت یا قصد غربت مطلقه این برای ما مثلا الان متعاربشونی شده که اگر مثلا فاصله بین دوتا عمره مثلا یک ماه باشه اما اگه رجاءا ام اینجامزه اشاره خب ما به شورا هم چی رجاءا چه انجام بده رجاءا دست من که نیست که من یک عملی انجام بدم رجاء ثقابا بعنوان باید مایه داشته باشه اساس داشته باشه هم اثر نداره میکنه چرا احتمال ببین تا پس تا پس قرض اضافه کردین تا گفتین الان احتمال ام؟ اح؟ ما میگیم اون احتمال قویه، 10 درصده. مؤخر اونم مؤخر ذمه، اونم بعد یه احتمال قوی باشه. یه احتمال بسیار ضعیفه که اون ذمه من کارآمد نشه. چرت زده. این بحث ما سر این بسازه. این انبعاث نمیاره. به این عمری که الان مطلقا اصلا نیا خوبرجوعاً انجام داره. خب من بحثم اینه که چرا رجائیه؟ وقتی ما از ادله استفاده میکنیم فاصله یک ماه باشه خود پیغمبر اکرم که عمره که انجام دادن در عمره صلح قضا از اون عمره که انجام دادن سه روز هم در مکه بودن یه عمره انجام دادن بعد مگیاشون انجام و عملا یک سال فاصله این دو تا عمره ریاننده میشه اهل سنت هم ادعای فاصله یک سال میدن چرا من علی نبی روایت 10 داریم روایت یک سال یک سال ما داریم اهل سنت یک سال ادیشون یک سال می سال به سال مثل داره داره. توی اونها شاید باشه، اما توی یک سال هست ما تو فعال ما نییم سال ما تو اما یک ماه داریم چرا الان این باهرها دیگه راجایان انجام چه راجاییم؟ وقتی که ما اصلاح کردیم، اصلاح که ما از عدلیه، این چه راجاییم؟ من این فرق راجایشی نه، هم بگم اون انجام فرصت که بود سیب در مادینه بودن؟ یه من که انجام ماشه تواشه این رایی نبوده دیگه تنه این که همون نه با اصلا سه ساعت با شطور میدهتن میگم اونام مم. که استفاده کردن همینه گفتن مثلا سال به سال بوده و میگن قوام عبادت به ثبوت امره نمیشه آه امر به عمره داریم به اینکه تو خاطر اون جوانزه چون تغییر میکنه. تغییر میخوره نتیجه تغییره به هر حال اون اشکالاتی که مرحوم آی لایینی فرمودند ایشان لعاب لعب ایشون فرمودند انصافا واردی در از امور خاصیه صدق راست باشه جو مشکلی اشکال اساسی اون انواءه اون قصه اند اون هنوز ذهن ما اشکال بسیار قصد. و با تمکنی که ما داریم خوب من می من به رساله نگاه میکنم مثلا نوشته باشه که تو نماز از من نگاه نکنم با تمکنم من اینجا این مخام بگم این احتمال رو نفس درست نمیکنه. کنه با شدید من چی بله شما اگر راه ندارید دو تا هم اختلاف دارن چاره اینه درسته میگه بالاخره یا این درست یا اون درست یا این حجت یا اون حجت این قبول نیست اینجاست شما اجزام میکنه همین فرض بگیشون فرض دو تا فقيه یکی واسه چهار اعت بخونی گفته حق دو تا بخون منم بین این دو تا میذونم خب اینجاست من ادعا میکنم میگه بالاخره امرشو کی از این دو تو میتونی تقلا همین من بگم به قصد امره الهی نماز میخوان ولو این من ابداع کردم چون بین این دو تاست. اما وقتی تغییر من تطواش واضحه در کتابشون نوشته و تمکن دارم از انتصال تفصیلی من از این کنم بگم مثلا این که از نماز موفم به قصد هم چارت من میخوام ابداع نفس با تمکن اصلا ریشه یه ابداع نمیان. و من فکر میکنم حالا معزد میخوام این که ادعای اجماع شده نماز چین افرادی باطله فکر میکنم دو بوده، دوتیش میشه خیلی ب این فقط فرقی نمش داره و محقق هم میگه مرام شیخ هم نظر میکنه ادعای اجماع شده نماز این شرط اگر اگه دو دستور نماز خون ظهر اس با این ترتیب این باطله برگردی رساله باطلته و دوباره از اول میکنه یعنی دستور نماز میکنه اگر اون ادعای اجماع ثابت باشه به نظر من احتمال در من خود مسئله دقیقاً لزمه اقوال نگاه نکنم احتمال میذنم مثلا از سالهای 600 و 500 کی مقدار متکلمین ما در فرق نقش از زمان مثل سیده مرتضا و بعد به بعد. به نظر من اگر باشه مال بیشتر اجماعات مال این فترهی بین علمای ماست اما به هر حال واقع نظر دعوای فوقها شما ما کار نظر دایی که شده این به نظر ما قصد ام تحقق پیدا نمیکنه. کنه یعنی نمی کنه بکنه وقتی راه در مقابلش هست امکان در مقابلش هست اونگلا من افسازی من که اینه ایتیان محتمل هسته ایتیان نهید چرا ایتیان چرا درد بقی شگیه افو که بیمو چرا کی گفت این احیان محتمل در اینجا هستند درسته اصلا نمیاد نفس ادعا بکنه هم ادعای را ادعایی می میتونه درسته این خلاصه بخش دیگه طولانی صحبت نیمید هم می‌تونی که دو تا حج استی؟ خالصاً باید کل محتمالات انجام بدهن نه می‌مخواست که من فکرم دیوودم تو اینجا پس که دو, دو نفر مشتهیدن همین دو تا انجام بده لازم نیست پس تو مطلس اولی دیگه هم هست مال دیگه من. اما این دو تا رو حجت می‌داری یا این یا اون پس رو احنا بین این دو نفر دستات در همین این کل است هر در مجموعه ما فقط 4 تا است ببین دو تا, تا. لازمی تا انجام بده همین دوتا تا اون اقداری که میاد در همین دو تا خوب دقت لذا بعد ازش میشن احتیاط نسبی یک اجزاء نسبی یک اجزاء مطلق چرا چون حجت ما بینا نمی‌شه چون اعلام همین بین بینطورتن... حجتی اونا هست زمان نظر کی؟ نه دو زنبان حجره داده نسابه نکته داده که روشنه شد مثلا بله اگر بین سه نفر شد واقع هسته چارت شد به قطعه همون. اون بحث دیگه دیگه اما اگر بین دو نفر شد این سوال که اتیان جمعی محترم نه دیگه جمعی محترم لازم. اتیان اون مقداری که حجه یا اینه یا اونه به قطعه همونی این راجبه این قسمت مخاطب خلاصه محتر به نظر ما قلعا شبه دارم یک عبود شبه دارم عبادات دارم. با تمک اگر تمک نباشه حرف بلی این راجعه بگی بعد مرحوم استاد به وفاقاً مرحوم شیخ انصاری دیگران واده بحث زن شده. من توضیحا از کردم اصولاً این بحثی که مرحوم شیخ مطرح تر مدودن اصلاً اصلاً به زن در اون نسخه اصلی ایشان بحث قط رو به عنوان مقد تو نسخی رسالش چون از کم شیخ چهار تا رساله تو اولیش حجیه تون مذنه تا رساله حجیه تون دومیش از دراعت و الاشتغاله. بعد رساله تون یا استصحابیه که هم رساله سعادل تبیه شیخ اینجور نویشتن چهار تا رساله شد وقت مقدم اصلا داره به حجیه تلقه اینو بحثای قسمتیت تو رساله شیخ مقدمه بود حالا بعد چه شد شد دوست دقیقا نمیدونم یا بعدها شد یا خود شیخ شد, شد نسخه چاپ زمان شیخ من نگم احتمالاً زمان شیخ شد یا بعدشه. به جای مقدم اصلا سلخه اصلا که داره اول شد شد, شد یک مقصد ولی اساسا مقصد نمو از مثلا مقاطعی اول اصول که استاد ایشون اما اصلا دا ایش دا محمد اونجا دار دا نگاه کنیم ایشون نویش مقدم اصلا در ایل. ایل مقدم شدن. حساس بحث حجیت زنه اما الان دیگه در کتاب های ما طبعا در همین محبید از وسائل اینا مقصد دوم بیرسن اصلا مرموم وستان مطالبی رو ایشان و مرموم ناهیلی و دیگران در اینجا آوردن که ما حالا به ترتیب بگفت تا, تا اونجایی که میشه متعرض میشیم از کلم که برای مرموم شیخ انساری مخصوصا توسط بنا به این شد که در مقام حجیث. دائر مدار کشف گرفتن اون نکته فنیش عرض کردن اصلا اینو حجیت رو دارمدار مدار کشف کرد اون وقت گفتن قاعده کاشفیه است کشف ذاتیه خودغه حالا انصاب هم اشاره کردن باز اشاره کردن که این ذاتیشون ذاتی با بورها نه مرادشون اشاره کردن که نیست ذاتی نیست نه انصاب چون که این اشکال وارد نیست به ذهن مثلا اعت با کشف یکیه دوتا نیستن نیست بعد میزه ترجمه مونه بعد اون کشم که تعلق به خارج داره به لحاد صفت نفسانی میگن به لحاد تعلقو به خارج یکیه اصلا کسر این کسر حقیقته این که شما این کرده؟ رو خوز خان کرد کنه کسر شما این چیز بوده کسر این کسر یکیه از دو زاویه دیدن از عزاوی فعل فاعل سو شش ازاوی قابل انعطاش این دو زاویه نه اینکه دو تا باشه به ذهن نمیاد من فکر می‌کنم که این تعبیره یعنی ذات هم شاید تسامحی باشه به ذاتی است کشف گوشین یعنی همین این سفاد نفسانی شما رو به لحاظی در ذات شما میان قصد به رابطه ای که ما میگه کشف یک دو تا نه اینکه دو تا باشه یک حالت فقط نه اینطور، پس ذیل بناشی چون تمام شد حجیت مساویس با کج دیگه کج هم در قد پس اونجا حجیت نمیشه اونجا ذاتیه الهی دو در مترز چون یه مقدار کج هست به چون کج کش خام نیست نمیشه عین یعنی حجیت ذاتیش باشه اما حجیت قابل کرده و به تغییر ورزشون حجت منجعله داریم که در باب خطه حجیت جعلیه داریم که در باب زنه طبق این تصور در باب شرک اصلا جعل نمیشه پس ضریکی ذاتی ضریکی شرعی ضریک هم مستحیله جعل و حجیت چون در باب شرک و جعل اصلا کشمی نیست من نمیدونم الان سال بودن که آیزه بیرون رو میانیم این دیگه کشمی داریم رابطه من با خارج ن کشمی لذا مرموم نایمی میفرموند در مثل ممکن من بونکه میدیه علی حجیه این اصطلاحشون اینجور شد روشنجون میشون پس راویه بحث چی شد اون نقطه اساسیه بحث اینا آمدن حجیهت با کشف یکی گرفتن نتیجهش این شد یه به حجیهت ذاتی یا منجعله یک به حجیهت تعبدی یا جعلی و یکم عدم و حجیت استحاله جعل و حجیت جعل جعله جعله چیزی نداره که ایچ نداره که که کشفش پس حجیتش هم تامه که حجیتش کشفش و حجیت ناقص اونجایی که اصلا کشف نیستی که در موارد جعل اگر بخواد شارعه تسر رو موقع به تریان جعل وضیحه میکنه نیمیاز که موازه جن بگه من کشت در نه قبول کردم این خوب دقت رو یعنی اگر پس شما در رکوع در همین آی... روایت قصه قاعده ای... تجاوز خوب امام میگه من در فجه شر کردم رکوع کردم امام بلا قبره آیا آنگه امام جهنه حجیت کرد جهنه کشت کرد او این مسئله من جاهرم نمیدون رکوع انجام داریم امام میگه بنا قدره کرد یعنی جل کرد جل کشف. تو داری میدینی؟ کاشف داری؟ میگن نه چون جل جل چیز وقتی هیچی نبود جل معنا نداره اگر بیاد شاره کاری کنه چی حال میکنه؟ نیاد جل حکم میکنه، تعبد میکنه تما کشف قابل جل میگه جایی که کشف اصلا نیست قابل جعل بله اگر کشف ناقص باشه قابل جعل این که این نکته رو من باز گفتم که دیگه تا آخر بحثا خیلی واضح بشه مرحوم نائینی ان شاء الله کرد خیر حجیت دولت تزویر کج میگیره مثلا زن کاشفیتش 80 درصد بوده شاره کرده 20 درصد یکی از اشطلا دیگه ورزت متعاقب نائینی کردن خب همینه میگه چون میگه کج قابل جعل اگه قابل جعل تو جعله بودی اون تو جلب چمیه، جاه اول یعنی خود کاشفیت یه چیزیه که جلبش بخوره اگر کاشفیت جلبش نخورد نه در جلبش نمی‌خواد، نه تفکیش میکنه شارب بی‌درصد تفکیش می‌کنه، بالاخره کشف تمام برد. شکل. رو تمام می‌کنه. تمام چرا که اش زال شک چی تعبیر نیست اون واقع با معنی دقت این نقطه فرنجو پتل که اجزای فشونال بانک پس بنابراین این از من موجودات تشییج یعنی به خب یا نتیش کشفته، تشیصت کش. البته این بحث داریم. پس بنابراین این در ذهن آیان آریانینه. البته ما این بحث رو مفصلا تو بحث انجام داریم. این درست مطلب اجمالا به این که کاشف و کشف زمینه حجیه است. اما حجیه یک مقوله اجتماعی است. خود حجیه مثلا جز قانون مثل خود حدود قانونی یک مقوله اجتماعی است. این طور نیست که دار مدار کش و تا یک امر واقعی باشه. و نظام به نظر اغلا به نظر ما قابل ده و تصرفه و اصولا در جمعی مراتبش حتی حوضییت مثل هم احتیاج به کشف یعنی داره قرطان رو کنند جعرش هم این نیست که تصمیم کشف باشه این حقیقت جعل نیست نه و نظام در تمام مراتبش احتیاج به جعل داره البته کشف زمینه جعر قبوله و اغلا به عنوان یک قانون گفتن رشته و غیره محسوس بینیشون قبول کردن چون بیا از قرد بالاتر نیست در یک شرایطی اگر قرد آبی باشه مقدماتش درست باشه چین باشه اون حجت اینکوری فرمیدن نه اینکه که حجیت تابع صفات نفسانی من باشه اگر قاطع بودم حجت درست درست زان بودم احتمالا میادم جاهل بودن نمیاد این نیست البته زمینه حجی زمینه و لیکن تماما دارمداره این صحبتی بود که صافت کردی فردا انشاءالله تالا اگر به ازن کلمات استاد و مرموهای ناینه که چند سطحه چون اجمالا اینجا اینگه بحثای عجیبی قریبی کردن که نظر ما خیلی موسیقی یه اشاره بشه کنیم وقت وارد بحثه بی بی تجاری ان الله